رادیو فیلم دل شکسته به قلم روایت و هدایت علی روی بازیگران سید شهاب الدین حسینی سر دسته‌ی اقو سواراست نمیخوام براتون جالب باشه ویتا بادران من خودو چشمه خیشتن دیدم که جانم میره زنده یاد به نظر تو این دختری که الان اینجا نشسته واقعا این شکلیه محمود پاک نیت. من با های دقیق و محاسبات میلیمتری انتخاب کردم فریبا کوثری به نظر من شما بیرون رزار رویگری ما زمین شخ می‌ذاریم برای می اینجا شخ میزنیم برای چمن با حضور گوهر خیراندیش من اگه بخوام براتون بگم یه چشتتون عشق میشه یه چشتون خود شقاویق فراهانی هی تحدیر هی فشار بیستمری تنهایی آوا آو... آو... آو... آو و نوا از محمد فرشت نجام بانی و فراهم آورنده مجید اسمائیلی محصول مشترک مؤسسه فرهنگی هنری شهید آوینی و مرکز گسترش سینمایی تجربه و هفر. پردار درخت به ماشین مدل بالای نقره رنگی میرسیم یه جفت کفش تابستونه قهوه‌ای روی کاپوت ماشینه دوستان و همکلاسی‌های های نفس دور ماشین جمع شدن و خود نفس روی کابوتش اون عینک آفر بشد به سرش کفش و چی کرده بابا؟ بابا یعنی این از قول من بشو بکن از قول من بشو بکن و بگو آن مامانم تو یه مورد اصلا گذشت نداره حق داره حق داره به خدا بابا که بی و کادوی تولد بده بعد جوری هم باید هوا شد داشت بابایی بابایی بابایی بابایی بابایی بابایی بابا با صدای سوت نفس همه ساکت میشن هوا خواهشم من نواسه این چیزا خیلی دله آما <تصفح> آما چی؟ آما به دیکار تنه <تصفح> آقا فلسفه بی فلسفه فقط من که آ سوسو من که بچو بچو، پسر جوان با موتور به اونها نزدیک میشه. اون کلاه ایمنی به سر داره. تقریبا نزدیک اونها نگه میداره داره. موتور خاموش میکنه و پیاده میشه. کیف چرمی قهوه‌ایشو هم بردوشش همایل کرده. موتور رو روی جک قرار میده. اون پسری جوان با محاسن مرتب و کوتا پیرهنش روی شلوارشه نفس به اون نگاه میکنه ظاهرا دل خوشی ازش نداره در کلاس دانشگاه استاد مشغول تدریسه مینویسه پدیده اجتماعی تام خب چی میگی خوش استاد ما هر کاری میکنیم جهان سوامیم عدم رشد و توصیه همراهمونه ما باید تلاش بکنیم موانه رو تا جایی که میشه کنار بزنیم این موانه چی هست؟ شعار شعار زدگی استاد توی جهان سوم شعارا معقق نمیشه <تصحیح> استاد لبخند زنان جلوی کلاس راه <تصحیح> <تصحیح> میدونی چرا؟ میدونم من نمیتونم توضیح بدم. یکی از پسرهای مؤمن کلاس کلافه به اون نگاه میکن. کسی میتونه بگه و جوان کسبه در دست دست پولن. تو تو به دوران نفس چپ چپ به دوران نگاه میکنه. <تصفيق> چون توان اجرایشون شون هم وزن آرمانهاشون نیست و قدرت کسایی که ازشون استفاده میکنن بیشتره آرمانهاشون در حد حرف و شعار باقی میمونه. خب راهن راهش چیه؟ برموش فکر میکنم استاد به قطعیت نمیتونم بگم. <تصفيق> <تصفيق> اون چیزی که فکر میکنیم نفس همچنان چپ چپ به اون نگاه میکنیم خب فکر میکنم دوتا راه کار اول خودشناسی و خودسازی فردی دوم ترسیم کردن مدینه تو نبیل یعنی یک اعتقاد عمیق خدایی همه آهاد یک جامعه رو چنان چنان همراه کنه هیچ چیز جلو دارش نمیشه. خود این شعاره. بچهای مومن کلافه و دوستان نفس خوشحال از این جواب دندان شکن. استاد این وقت تموم شده. سرجون ساعتشون جلسه بعد راجع بهش بیشتر صحبت می‌کنیم. بفرمایید. کلاس تموم میشه. دانش روام میره. استاد سر میز خودش میره تا کیف و کتابش رو جمع وجو کنه. اونها رو برد. استاد به سمت در کلاس میره یکی دو دانشجو با استاد از کلاس بیرون میره نفس مشغول جمع کردن بساره بایدم حمایت امایت باشم سعیمی اومدن دانشگاه با یابو میام با قاتل میرن شعارم میدن توق طبق, طبق اجالت بکیش نجاوزم رایت تو سکان به دورش وقت وقت بسر به طرف نفس حمله میشه ادده اونو میره نفس میره و بقیه هم پشت سه در آنه موتور، نفس رو میبینیم که عصبی نزدیک میشه به موتور میرسه لگد محکمی به موتور میرسه نمیدونه چی کار کنه لحظه اینکش رو برمیداره دوباره میذاره دور خودش میچرخه و با عجله سمت ماشینش میداره منزل آقای دوران خونه قدیمی چندین کتاب بوید میداره عکسی بر دیوار پدر شهید آقای بود مادرش شال قرمزی بر سرداد اینک به چشم می زده و مطالعه میکنه و چیزهایی یاد داشت چیزی میخوای بگی؟ نه نه ایچه. دوران هم با پیرهن سفید یقه کوتاه و بستش روبروی مادر نشسته و میخواد چیزی بگه اما مستصده مادر عینکش رو بر و سکوتو کووته مادر از پشت نیز بلند میشه اگه یه نفر خیلی پاشو از گیلمش دراز سر کرد نباید زد تو دهنش اگه وقار خود آدم پایین نیاد چرا یه <تصفح> یه دختریه لا لا, لا. به هم میگه یا آبو سوار به هم میگه سهمیه اومدم دانشگاه بچه ها میخواستم عدبش کنن نزاشت در آقای محترم نیست به یه خانم بیادردی کنه اه در شن این خانمه محترم هست هرچی دلش خواست بگه من حرفمو گفتم بقیهش با خودم همیشه جوری با ما حرف میزنی تو برزخ میمونم تمنی اجواری برای تجویز میکنم اینجا دیگه کم بیشتر کار کنه خیلی من باشه. کجا مسجد یه سری به بچه ها بزنم بعد میرم کار با. سفر. مادر کتابی سبز رنگ و قدمی از زیر نیز بیرون میاره و پیش پسرش میاره اینم برام درستش کن چی هست؟ یه نستای قدمی چاپ سنگی لیلی و مجنون کتاب نیاز به صحافی مجدد داره دوران توی چاپخونه پای دستگاهه کتاب لیلی و مجنون رو باز میکنه و رق میزنه لایه کتاب فوت میکنه چند برگ گل پای می افته شب چرخلاج که چرخ لاج بردی آراست کبودی بزردی خندیدن آن چونان گل زرد آفاق به رنگ سرخ گل کرد سید در کنار دوستان مؤمن و متعصبش در محبته دانشگاه با هم صحبت میکنه سبحانه آخه این چه نمیشه سید مگه مامانت برای ما تکلیفون شخص میکنه نه خبی ولی حرف حساب جواب نداره خلاصه یه جور نشه که پر روی این دختره همگیر بشه نتونیم جمعش کنیم قرتیگری نشه پر روی در بیان بردرمون درست میگم قرتیگری همگیرش الله اکبر به الله زیاد داریم بازارگش میکنیم تصمیم گرفتم یه جور دیگه باش مقابله کن یه سلام علیکم خواهر شما بپر بابا <تصفيق> نفس از سیه جدا میشه و به سرعت دور میشه و وارد کلاس میشه دوستانه نفس دورش جمع میشه نفس روی میز نشسته و پنج نفر دیگه دورش هسته نفس به تمس خود سیه دو که به سمت دوستاش در طرف دیگه کلاس میده و با اونها دست میده رو نشون درمی چیز آره همه <تصفيق> پوشش <تصفيق> عربی هفزه سید و دوستانش از خنده بلند دخترو عصبی شده. مثلا مثلا مرحبایی چی ان شاء الله دوستان سید که عصبی شدن از اون میخوان که یه کاری بکنه. خدا کودک به مدرکش احتیاج نداشتن. از سگ کصبند توت از سوار سوارارو تحمل کنم آخه یعنی چی تو که وزتون توپه واسه چی میای دانشگاه؟ تا آی کیو ها مگر همه چی پوله. خب بابا اصلا برو خارج اونور مدرک بگیر چی میشه مثلا بابامو چیکار <تصفيق> با شوهر کنم. شوهر وای سر با وارد شدن استاد همه ساکت میشن و جلوی پاش بلند میشن. استاد دو کتاب در دست داره و عینکش رو برگردنش آویخته. بچا جا جابجا میشن و سر جای خودشون قرار می سلام. سلام علیکم. دخت بخیر. سید در خونه دو زانو نشسته و کتابی رو باز کرده. مولوسی استین کوتاه پوشیده و مثل همیشه تسبیح گردنشه مادرش با کاسه انار دون کرده میاد و پشت سرش میشینه اما اون متوجه نمیشه میوه بهشتی انار با شنیدن صدای مادر سید کتابو میبنده و درخشون متوجه اش توبلی چی خیلی چیزه خیلی چیزه مادر مثلا پیدا کردن یه راهکار برای ترسیم یک جامعه آرمان دانشگاه چه برات مهمه؟ خیلی. خیلی، خیلی بیشتر از اون چیزی که بتونین فکرش بکنی. چرا؟ چون احساس می‌کنم یه جور تکلیف. باور کن احساس می‌کنم یه جور تکلیف. وگرنه به خاطر اون دختر بی‌تربیعتام که شده فکر می‌کنی حاضر بودم یک لحظه اونجوری تعامل کنم؟ نه. اصلاً. <تصفيق> یه لحظه پدر نفس در حیات خونه روی منقل کباب درست میکنه و نفس شادمان سیبی رو به هوا میندازه و می‌گیره. مادرش هم نشسته نفس سیبو توی است نیسته چیه؟ چرای میخندی؟ میخندی؟ بزن ولی آفایی خوش آمد این بچه ریشتو داره که میگی سوسکش بابا، یه ولی بابا یک کاری که ما از خود در سر درست نکنیم یعنی در ظاهر احترامشون کنی اما درباطه تو دلت هرچی خواست پشتشون بده اینا همه شون دست پدر در با زوغان می سوزه باقای انسانیه انسانی بچه من انسانی اون که تو قدرت به هدفت برسی باقی شهرمهینه در کلاس استاد در جایگاه دانشجو ایستاده و دانشجو جلوی کلاس هستند. دو نفرایی که می خونم با هم پایان نامه بیارن. وربلی بین را میفته یکی از دوستای سیف، سفته. پسر ابو الفضل. باید بتونم. آینه خوا؟ میچرائی نداریم. ببخشید استاد، نمیشه خودمون انتخاب کنیم؟ من با بررسی های دقیق و محاسبات میلیمتری انتخاب کردم. استاد ولی جای هیچ اگر و اما ولی هم نداره. استاد عینکش رو به چشم میزنه و از روی دفتر چشمی می‌خونه. یکی از دوستای سید نگران نتیجه است. <تصفح> <تصفح> رضا پهلوان و حسین عربی راضی نیستن. میسم و و ثمیه باقرنژاد ظاهرا اعتراض می گلبرگ زمانی و محمود میسمپور <تصفيق> یکی از دوستای سیدی که با یکی از دخترای دوست نفس گفتن <تصفيق> هر دو ناراضی گلبرگ ناامید کتابشو روی سرش میذاره و نفس میخنده محمود هاج و واج سید به شوخی سر روی شونه محمود میذاره و گریه میکنه و بعد میخنده استاد هم لبخندی به لب داره اونا به ناچار میرن و کنار هم میشه سفدر خیرخواه و عبالفزل خوشتباره باز هم ترکیبی از دو طرف اما چاره‌ای نیست ابوالفضل برای دخترها دستم ملیحه لرنجاد و سوهی بانوپور این دو نفر رازی پویا جهانگیری و زهرا نصر اللهی مدتی گذشته به آخر نفرات رسیده و فقط دو نفر موندن سید و نفس <تصفيق> ابو فض تو سریع خورده رو توی این شلوگی تلافی میکنه استاد از پلا پایی میره و نفس به دنبالش امکان نداره باید با هم کار کنی. ببین نمی‌کنه منم حق بی‌انصاف باشی نه استاد. استاد، آقای من، ما حتی نمی تونیم به هم نگاه کنیم. ما چند وقت بشه امروز باهات پایان نامه بدیم؟ ببین دخترم، وقتی به من میگی استاد، حرمت کردی. باید به حرفم ایمان داشته باشیم ای آخه این چه ایمانه که من باید آدم آدمو که تا حرف بمونم برام غریبه با هم روش دوام کلامشام. استاد ما اون مثل زمین و آسمونه. آقا حتی تو نظرم باهم آقا خود سر یاو استاد رفته و نفس چشم بسته برای خودشونو اله یابو الله اکبر سکینه الله پنجره نشسته و تسبیح میندازه و ذکر میگه یهو استادو در محبت میبینه با عجله به طرفش میره استاد در عالم خودش که سعید بهش میرسه سعید مثل همیشه کیفش روی دوششه با هم دست سلام سلام امیرعلی چطوری؟ <laughs> د... خدا حاجی خداوکیلی این رس میشه شما که منو میشناسی شما که رب رب به منو میدونی شما که خود اهل دلی حاجی آخه این چه ای؟ استاد به طرف ماشینش میره و امیر هم دنبالش حاجی من مخلصتم به روح بابات قسم به همون خاک که من توش موندم اون رفت به تنهاییم قسم خیلی خوبه بهترین راه اگه هم, هم نسخهی باشه خوب بیجیدم حاجی خدا خیرتون بده تنبیهیه بگو ست تا اردو جنگی برو دیویستا خشمشم هزار تا مانو رو چشم دور دانشگارو کلاخپر میرم اما این دختره رو حاجی این دختره رو مامه بیادبی قیبت حاجی جان امام یه راهی هیچ راهی نداره باور کن شما دوتا بهتری نید نظرتون کناره هم یه نظریه ماندگار میشه <تصفيق> اگه قید دانشکارو بزنم. التماس داد. میگه سوار ماشینش میشه. امیرعلی تنها مونده. عصبی و در فکر با تسبیحش ور میره. نفس توی ماشینش نشسته. آینه رو جابجا میکنه و چک میکنه کسی نباشه. امیرعلی ناراحت روی موتورش نشسته. نفس تا نیمتنه از شیشه ماشین بیرون میاد و امیرعلی بلند میشه به طرف نفس میگه: میخواد چیزی بگه. حرفشو میخوره و میگه: سلام علیکم. لعنت الله و مرضات تو. دعا میکنم بمیری. با همین یابود بری زیر کامیون. کامیون آسترالی. علیکم علیکم. مرض علیکو. نفس روی ماشین بود. امیرعلی زجر میگه و با ورشیل اون لعنت و بعد عصبی به موتور میکوبه که پدر نفس زیر ملاقهی بخور میده و نفس زانو به بقل کمی دورتر روی مرمش است چی؟ چگاه کنی؟ ترک تحصیل دیگه نمیخوام برم دانشگاه چی؟ جاله؟ جا... جان جانم چرا داد میزنی؟ میشنوی چی میفرماند دسته؟ گلتون؟ مادر اومده و کتری قرمزی با خودش آواله متاسفانه بله عزیز ملافه میره آخه من میخوام بفهمم فرق این خانم که جامعه شناسی میخونه با دخترای واقعا که سهم در بلوچستان تاک داشت ذکر خب قبلا نمیکشه رب بنده شد چیه پدر ملافه کناوس استاد احمقتون به جبر افلاطونی اعتقاد داره تو باید میدونو کاری کنی و پنج از دوستاش در کنار دستگاه صحافی هستن و یکی از اونا پشت دستگاه رو میپیچونه امیرعلی هم پشت دستگاه رو بر میگم دو خا میکننی س الاق مشور دوست داری فکر کنم مادر امیرعلی پشت میز کارش نشسته و امیرعلی در فکر به میز تکیه داده و تصویر میداازیم. عقب نشینی از آارمان حتما یه دلیل محکم داره. حتما علتش انقدر قوی بوده که همه چیز رو تحت و قرار داده حالا <تصفح> <تصفح> اگه تصمیم تو گرفتی چون انقدر مسترسلی؟ امیرالی نمازش رو به پایان برده قرآنی رو میبوسه ذکری میخونه و به قصد استخار قرآن رو باز میکنه نفس با ماشین در حرکتی که امیرالی با موتورش سر راه اون سبز میشه سلام و نفس دیگه چیزی ببین آقا برادر بذار همین اول یه چیزی حالیت کنم به خدا به پیر به پیغمبر میخواستم از دستت نیام نه حوصله دارم نه میفهممت نه میخوام بفهممت این چند رو با بابا ننه دوست دشمن کلنجار رفتم تا تصمیمم میشدم بیام به خاطر مدرکشم که شد شما رو تحمل کنه دور به هر کس و هر چیزی که معتقدی یه جور کنار بیا این کابوس مگان تمام بشه ما رو بخیر شما رو به من زیاد حرف زدن نیستم معمولاً هم خوب حرف نمیزنم تا به حال به جز مادرم با هیچ خانم دیگه هم کلام نشدم. فقط یک کلام به والله من هم حس شما رو داشتم الان هم اگر میبینین آرومم به خاطر اینه که استخاره کردم خوب اومده کاش خوب اومده بود آلی خور از رست کاریم همه یادت باش شانه به شانه نه سایه به سایه امیرالی نیم نگاهی به نفس میگذره و با هم راه مده استاد روی پشتی صندری نشسته و با امیرالی و نفس که روبروش روی دوتا صندری نشستن صحبت مده صحب نظرم هستید ناخدار خیلی چیزاره میدونید خیلی چیزارم نمیدونید جفتتون با چیل خودتون مسائل رو انجاز میکنید بعد استاد <تصفيق> بعد خوبش نکنیم بعضی مواقع تعاملتون خیلی کمه تو جفتتون غرور بیداد میکنه تو خجسته غرور با غرور قرلون تو دوران غرور با فروتنی فریاد <تصفيق> جامعه یعنی جم جمع من جم تو خجسته جم تو دوران یعنی ما ما وقتی ما میشیم که من من اما زمین بذارم دوران منشو زمین بذاره خوجسته منشو فراموش کنه و خوجسته ها و دوران ها آرمان مثل آینست. آینه است آینه یعنی حقیقت تمام نوان آرمان باید به جامعه روشنی بده. پایان نامه شما ترسیم جامعه بدون من بدون تو بی خوجسته بی دوران آینه در آینه نفس توی خونه سیبی که در دست داره رو آینه میذاره امیرالی توی خونه جلوی آین است و فکر میکنه نفس کنار استخر به حالت یوگا نشسته و فکر میکنه امیرالی پای حوز وزو میگیری و تصویر مواج خودشو در آب حوز و تصویر در آب امیرعلی و محمود توی کارگاه صحافی. امیرعلی مشغول کاره و محمود باش صحبت میکنه دیگه چوبی دست محمود. منصور خیر روی دوست دارم. حسین حسین روی لباتو دوست دارم. یا حسین بگورد دل من یا حسین. همین کارو می‌کنم. ولی سخته. باور کن سخته. بعضی‌ها برای بعضی کار ساخته نشده نخوی. تو جای من چه می کردی؟ کل میکردم به خدا میرفتم جلو. مامان خدا تو که استخاره کردی خوب اومده. دل کردن دیگه برای چیه؟ میخام واسه جامعه نسخه تجویز کنیم. دو تا آدم به اجبار نفس میده. با دوستش صحبت میکنه. جمع کردن همه باورهای من با این آدم مستحجر ممکنه. سخت میگیری نفس. سخت میگیری. در نظر من آسیب جامعه ما خود این آدم های متحجرم امیرالی با چشمان نمناک در حیات منزل زیر درخت با تکبوش سفید دراز کشیده و به آسمان چشم روخته مادرش از کنار حوز با اون صحبت میده آهای متجر پرشور تو آسمان ها سهل میکنی؟ نه اتفاقا روز زمینه، زمین زمین گیرم کرده ها چه کنم <تصفيق> چی چه میخوندیره آخانو بهت میگم از زمین باید رسید با آسمو زمین و زمان باید به هم بدوزی پسر بیدن که از زمین و زمان داره برام میاد چرا راجیت میگی که هاکوخ میکنی مگه تو به تلاش فردی اعتقاد منداری پدر نفس پای منقل با زغارهای گر گرفته با اون صحبت میکنه و سیگار میکشه تلاش تلاش تلاش مو کامبرختون بابا ثانی چون اصولت بهشت دیکدک امیر علی و نافع روی یک نیمکت در محوطه دانشگاه با هم صحبت میکنند اینا جوزوات تحقیقات و یادداشت های منه مطالعه کنید لطفا اینام هم سیامشخاله خدمت شما چند رساله باسیب های جامعه اسلامی اسلام و جامعه جامعه مدینه و جامعه شناسی مردمی چه با سلیقه مار کلا چه خوشگه آخر خرافت زنی میزنم قراره بعدیمونو بذاریم کجا باشه بهتره فقط فقط یه جایی باشه که سخت نداشته باشه <تصفح> چرا میترسی رو سرت خراب بشه برادر <تصفح> نه دلم میگیره وقتی دلم میگیره نمیتونم فکر کنم نفس رساله ها رو بر میداره و با لبخه به نگاه سفتر و از بور به اونها نگاه می دو بلند می نیست محمود و گلبرگ هم دارن جزوه رد و بدل و محمود به امیرعلی و نفس نگاه امیرالی گیفشو بر. یه روز دیگه امیرعلی در پارکی کنار میز شطرنج و موتورش نشسته که نفس که باز هم عینک آفتابیش روی سرشه می پارک گیر نیواردم ببخشید سلام نه علیک, علیک سلام و رحمت الله شخص هرومل یک شما طولانیه خارجیه خوبه هی هی بای بای مطالعه کردیم؟ آره قافل گیر کننده بود نوشتهاتون خیلی به خودتون نمیاد آدامس چرا؟ چرا آدامس؟ چرا به هم نمیاد آخه خیلی لطیفه یه جورایی باورای قشنگ اما نوشته های شما درست متناسب با خودتون چطور؟ من اینطور برداشت کردم که شما از انکار به معنا میرسید نفس با کمی تمسخور و دلخوری سر بردار باز میرسم حمیدوارم به یه اشتراکی برسیم آه. راستی به نظرت شعار رویانیست شما هر فصلو با یا حسن و یا زهرها شروع کردیم امیرالی نگاهی به نفس میکنه ولی جوابی نمیده نفس هم لحظه میمونه تا امیرالی سکوت شد نه من بنده آندمم هم که ساقی گوید یک دیگر بگیر و من نتوانم اهل بیت هم السلام به هم دلگرمی الهام و باور میدن که بتونم فکر کنم ببینم بفهمم بدانم باشم عشق. باش میگویم از گفته خود دل شادم من عاشقم آشقم آی آشق محمود نیروی انتظامی مچ دست امیرالی رو میگیره نفس عینکش شو به چشم بذارم سلام علیکم سلام علیکم کلانتری 125 یوسف نفس و محمود از در کلانتری بیرگیر که توا تو رعایت کن این اجابی میکنیم میگیرنتون دیگه شما بفرمین بفرمین آتیش کنی شما من اومدم کتن بفرم. شما بفرمین شما بفرمید من خودم با تون تماسیم محمود میره نفس هم تنها میمون نفس آمد. عصبی سوار تاکسی در بحث میشه امیرالی اونو نگاه میکن محمود با موتور جلوی پای امیرالی ترمز موتور مطور خاموش شد محمود ولی در عالم خودش پایان نامه شما از عشق هاشقی هم بحث میشه خویی در جامعه بالا ما هم داریم پارنامه می دیم نه پارک می دیم. نه راجعه به عشق و عاشقی و نه آیچ مهمانی منزل نفس نفس در فکر به ستون رو تکیه داده و پدر ایستاده داده و با مهمونا صحبت می جماعت رو سر کار از اون مجبور میکنم بچه آدم ها یه پارنامه مشترک بده با یه یابو یابو سوار شه یابو سوار از اونوار میگیرنشون که چرا پاینامه دادی؟ خودگیری دارن خودچون خودچونو میگیرن خودچون خودچونو میگیرن خودچون ریش گرم میزنن خودچونو میارن بیرون خب هر جایی ممکنه اشتباه پیش بیاد حالا چون یه اشتباه شده اصل مطلب زیر سواله این اتفاق ممکنه برای هر کسی بیفته استاد در دانشگاه یکی از چایی ها رو دوید بفرمایید میگیر بفرمایید نمک نداره دست شما درد نکنه استد به نظر من از فردا برید آدم ها و جمعایی رو که میشناسید به هم نشون بدید ممکنه خصوصی باشه استد با خصوصی هاش کالی نداشته باشید آدمایی را رو که میشناسید به هم نشون بدید حرف بزنید بحث کنید تحلیل کنید هر جا هم لازم شد شب روزش هزن مهم نیست تو هر وقت ساعتی باشه من در خدمتتون هستم مستاد چرا روی این پروژه اینقدر اصرار دارین خب من میدونم ما این پروژه افتخار تدریسم میشه و یه سری مسائل دیگه کسادتا نمیخواین نگی از فردا میگم یه اتاق در اختیارتون بذارن تو دانشگاه اگه بشه اگه نشه چی؟ آقا نهایتش اینه یه گوشه از کارگاه تو مرتب میکنی؟ میرید اونجا؟ شماسته ببخشینا بعضی مسئله رو خیلی ساده بینید که ممکنه نباشه بعضی مسئله رو سخت که ممکنه خیلی ساده نفس باشه نفس عصبی بلند میشه اون به فکر فرام میری امیر سر به زیر انداخته. نفس هم سر به زیر میدازه خیلی چیز بعدی گفتم نه نه اصلا محبتی دانشگاه باغبون مشغول آبیاری و امیرالی و نفذ کنار آبنمای دانشگاه با هم صحبت میده چرا روش ناسا توضیح بده؟ یه آن فکر ممکن سخت باشه. برای چی؟ بخوان توضیح بده وای، این روح لطیف اکنال کشته از من کلافه ای نه؟ آبیاری تموم میشه میگه، شما؟ از دست من کلافه ای جواب نمیده, نمیده و چند قدمی دور میشه نفس به دنبالش میره و بعد با حرکاتی شبیه کرولالا با اون هست تو کوزگری؟ کی؟ کارگری در کارگاه گری رفتم دو کو کوزگر کوزه کوزخر و فروش. من کارگاه صحافی دارم خواهرم صحافم اوهو. شباتتون خوشگل جلد شده بوده چشماتون قشنگ ببینه، ها چشمهای شما که فقط سنگ فرشو ببینه برادر من همیشه نگرانم شما بخوری تو دیوار و در لیلن که همه در و دیوارهای دنیا خراب شده رو سر من میشه کارداتونو دید؟ حتما فردا چه ساعتی؟ هفت صبح اوه. اگه میخوای بریم کله نشونش. امیرالی از کیفش کارتی در میاره و بهش میده نفس میره و امیرالی نگاه از زمین بر میگیره و لحظه به نفس نگاه میکنه و به سلامت نفس توی ماشین نشسته و آینه رو تنظیم میکنه که امیرالی رو توی آینه میبینه که روی چمن نشسته و نماز میخونه نفس کمی دنده عقب میاد از ماشین پیاده شده و به طرف امیرعلی میاد سبحان ربی الا علو و اکبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله قبول باشه خواهش می کنم بفهمید روزتون رو باز کنید ببخشید من فقط همینا روتون ماشین داشتم نفس یک بطری آب معدنی و یک بسته بیسکویت کنار جانمازی که امیرعلی مشغول جمع کردنشه میذاره و میره. محمود با موتور از راه میرسه و به امیرعلی نزدیک میشه. کجا داریم میریم ما؟ تاکسی وازی کردی؟ برات قاغالیلی خریده. ماشاءالله ماشاءالله. خدا قبول کنه. پاشو پاشو بریم برسیم مسجد پاشو دیره. امیرالی دست در دست اوستاد از جمع دانشجوها جدا میشه مادر چطوره؟ خدا رو شکر سلام دارم حاج خاج اغاما میخواستم میخواستم که در واقع حاج شما شما مثل پدرم میبینید همیشه بوی رو میدین خدا شایده که از بچگی خیلی قبولیتون داشتم همیشه دلم میخواست مثل مثل شما بشه شما هم معلم منی هم استاد من هم روحانی من هم فرمانده من اصلا تاج سر من ولی حاجی خدا من داشته باشه من همیرالی آخه با یه دختر نامهرم زیره یه سخ قد به اعتماد داشتم که گفتم برو زیره یه کار کن اینا چیه دسته آب آب ببنده پدر نفس آب مینوشه و غذا میخوره و با نفس و مادرش صحبت میکنه این همه جا آدم و میشه وسط بارکی نماز عیبی نداره بن اسره پدر قاشق چنگالو می نذاره و چپ چپ به مادر نگاه میکنه امیر و مادرش هم سر میز شامند به نظر من عیبی نداره شما دو تا انسان بالای هزار سهولت والا تا اونجایی که من یادم میاد شما همیشه حلال حرام میکردید خلاصم میکنم طرف حرم بری چشاتو در میارم فردار باهم بیام فردار من اومده پس فردا چیکار میکنی محمود میبرم بعدش بعدش دیگه خدا کریمه نمیدونم <تصفح> به نظرم فردا تو به هم بزن ببرم دکتر <تصفح> همین دیگه همین از چی میخندی؟ امیر علی عصبی بلند میشه و لحظه پشت میکنم بعدها بایت میکنم بعدها بعدها همش بعدهی بعد و بعید نمیشه <تصفح> که این تو سیلوک مکن پسر مگه تو نمیگی تلاش خودسازی فردی پس لشکر جمع کردن چیه؟ لشکر جمع میکنم حفظ کنم. بده. دردمو به شما نگم به کی بگم به کی بگم گفتیم پدرتم هم مادر هم خواهرت هم برادرت خب پدری کن مادر بعد برات فکر کن ازش میترسی و به اطرافیانت میشی کارگاه صحافی امیرعلی منتظره. آستینش رو پایین میزنه و میبنده نگاهی به اطراف میکنه که همه چیز مرتب باشه میشینه و یرگه کتاهشو میبنده تا میاد آرامش بگیره در میزنه نفسه که یه دست گل دستشه و اونو جلوی صورتش گرفته هرچند من خودم گلمه سلام علیکم و رحمت الله و برکا توف سلام علیکم و رحمت الله زحمت کشیدیم دست شما درد نکن خوهر خوهر بفهم چه خیلی که بانوکیه در دیوارشو نگاه چه تابلایی وای چه خطایی خط کیه؟ علاوه بر وسایل کار کتابخانه اونجا هست که کنار سجاده پهد شده همراه با کاسه آب و یکشم روشن به دیوار عکس پدر شهید امیرعلی دیده میشه و قاب عکس های خطاتی شده خطای خودم خطت هم بد نمیاد. چرا؟ خیلی زریفه چه جلوی قشنگی لیلی و مجون این مالی <تصفح> مال مادرم آفرین. مگه مادرتون اهل شعرن بله که یو خود چه استاد دانشگردی عربیت نفس تصورشو هم نمی کرده نفس به طرف سجاده پهن شده و قاب عکس شهید و شم که چندتا کتاب هم کنارش دیده میشه. اینجا چقدر شبیه عبادتگاهه روحانیه این عکس کیه؟ پدرم آخه خدا بیامار زدشون بچه گفتن بچه شهیدی ده دخشون چه کاره بودن؟ استاد مادرم استاد دانشگاه ادبیات فلسفه الهیه فکر نمی کردن پدر مادرت اینقدر دادم حسابی باشن پس تو چرا اینقدر امالی استفرالله آیش دوباره رفت شبک عربی بفرمایید امال یعنی چی این شکل نباس پوشیدم داره خفه میشه نگاه کردم نشستم برخواستنه یا بو سوار شدنت سلامیک خ خب چند صعیح نیست من جواب شما رو بدم چرا؟ آخرین این درسته که هرچی رو آدم خواستن کار کنه لقب بده یا به سخره بگیره واقعا ادبه مگه شما که ما رو به سخره میگیرید تو هر شکلی دلتون میخواد با ما رفتار میکنین حرفی هست دلت میخواد ازتون بترسیم؟ اهانت کنید در مقابلتون ادب کنیم خوشحال باشید چون قدرت دستتون خفه خون میگیریم ببینم تو توی اد مجبور میکنن که یکی مثل تو قرار بگیره که نظرمون اینا آسه و زمینه چی میخواید شما چرا فکر میکنید همه این شما و شما درست بقیه غلط آه! نفس که اقب اقب رفته و از امیرالی فاصله گرفته میشینی دست روی صورتش گذاشته و گریه میکنه امیرالی آروم آروم به طرف عمد نفس, نفس میاد و لیوان آب برش بهش میده امتون دروغ گر یا کاری گن زدید به باور مردم امیرالی قرآن در دست دوباره بهش نزدیک میشه قرآن رو میبوسه بر پیشانی میذاره ولی به نفس نگاه نمی کنه ببین خواهرم به همین کلام الله مجید با زبان روزه دارم قصدن بخورم من اصلا اهل این حرفا نه اینجور چیزا رو باور دارم نمی ما من و مادرم خانواده شهیدیم ولی از زمان شهادات پدرم که من سه چهار سالم بود رنگ بنیاد شهید ندیدیم از کل سهمی خانواده شهیده فقط یه بار رفتیم به ما دیدیم حالا اکر مثل دوتا دوتا آدم کاملا متفاوت کاملا متفاعد که به قول شما عقیده مثل زمین و آسمونه اما مساوی و برابر باز به قول خود شما شانه به شانه در خدمتی نفس؟ گریان قرآن رو در دست می گیره اون هم نگاه نمی کنه امیرالی از نفس دور میشه نفس که هنوز عشق می ریزه دست بر قرآن میذاره و بر اون بوسه می زاره. شب حیات خونه امیرالی مادر امیرالی چادر گلگلی بر سر در حیات راه میره تا به در حیات می رسه و اونو باز میکنه بله بلی سلام منزل دوران مادر امیرالی با سرتعید می کنه. من... من نفسم خوجسته با هم دست ام... هم دانشگاهی آقای دورا من رها. مادر امیرالی بیا تو نیستش ولی باید پیداش باشه امیرالی موتور رو به زور حرکت میده و با تلفن همراهش صحبت میده آخا برق میگیره ما رو بابا پنچاره کردم موتورم وبال گردنم پاس بدیش نه نه دارم میرم خونه رسیدم به اینجا که بیام ازش عذرخايه کنم چرا اینقدر دیر وارد مادر بلند میشه و طوری نیست که امیرعلی نفسو نذار کردم بابا بودی یا موتورت هم خودم هم موتورم ها مغز از حسین هم درس تجویزی استاد رضوی ملکی اعصاب پسر تاج خانم وای نمیدونی چیه که فیزگیه کارگدری نفس لبخند بر لب بلند میشه میسه و تازه امیر علی اون بند اومد و شد سلام اوهو بار کلا سلام عشقم ا فعلا خدافظ خیلی ماهرها جون مامو بم بابا قل قلیتم مرا خدافه امیرعلی دم در خانه نفس پدر نفس در باز میکرد در عالم خودش با تلفن همراه صحبت کرد سلام علیکم سلام علیکم علیکم سنا جنا بشه من دورانم با با با چه با چطورید چیز من زنگ بزنم بفرمی خانم به بگم بگو همکلاسیش اومده دمه در کارش داره سلام <تصفيق> سلام علیکم سلام شما به ببخشید من این برگ سبزیه به جبران شب قابل شما رو نده ببخشید ممنون بریم ما. بهرش کجا خا؟ خوام دوستامو نشون اس بدم. البته به وسیله اومد. بفرمایید این ماشینه بله. باز میشه. نفس وارد نگار نگارخونه میشه. جایی که شش تا از دوستاش مشغول خوندن آوازان. امیرعلی آروم در آستانه ای در دیده میشه. بچه ها سری بلند میشن و خودشون رو جمع جرد می در حیات منزل حاج محمد چهار بچه در کنار حوز دست آب میزنن و بازی میکنن امیرعلی در کنار بستر حاج محمد نشسته و ماساژش میده زن جوانی پای ویلچر مردی نشسته و به سرووز اون رسیدگی میکنه زنی موسین که عصای پهلوش در کنار پسری روی بحار خواب نشسته و ظرف میوه و چای جلوشونه نفس هم ایستاده و اونها رو نظاره گره زن جوان با نفس صحبت. شما مهندس چی؟ پیامه هیستم دادرتون هست؟ کشور؟ پنسر همه مادر حسیدا. من رايام که اميرعلي آقا دارن مساجد سو ميدن، حاج محمد برادر شوهر بزرگم. این دختر کوچولوت میبینی شعر سبز؟ آره؟ دختر حاج محمدم، بقیه بچه‌ها هم که بچهای سه تا برادرش هستن که شلوغن. خانماشون، خانماشون خدا رو شکر، داداششون ازدواج کردن، خوشبختن. یکشون هم سر کار. خانم حاج محمده؟ نه، نه. بیقاشه. چی بگم خانم حاج محمد چین اهل نبود حاج محمدم طلاقش داد یه شب پیر شد خدا خیرت بده ده می رلی مادر سایی بخوریم تازه دم و عتیرداره <صفح> لرون آروم آسان هاش فرمون میم خدمتون بفرمایی یاشی <صفح> اصنا <صفح> بود <صفح> <صفح> خیلی با جنب است عین کو آه. دو تا عروس که گفتم ازدواج کردم خودش عروس کرده شما بعد از مجرویت هم ایشون آره از سر وزیف و انسان روز دیم نه من من آشقشم خیلی چیز از یاد میگیرم تازه الان که اینجا میفهمم هیچی نمیدونم هیچ. بیفرما بیفرما تای میوه چه هش خانم مرد جانباز از روی ویلچر سر میگردونه و با مهربانی به اون میگاه فاج خانم میگم شما با این شرایط و این بچه ها مجروح شدن و شهید شدنشون سختتون نیست من زدم فاطمه زهراست هر که در این درگه تر است زوم بلا بیشترش میدهند امیرعلی و نفس در کارگاه صحافی امیرعلی پای دستگاه و نفس دوربین در دست دم دره و فیلم میگیره رفتم دانشگاه استاد گفت اتاق نشده به گوشه کارگاه رو مرتب کنید و شروع کنید فریاد البته خودشونم با شما زماس میگیرن شروع کنیم بسم الله بفرمید یایی یال. نفس از پلا سری پایین میاد. دوربینو به سمت خودش میگیره. اونا میخوان کارگاهو آماده کنن. امیرعلی چفیه در دست داره و نفس شالی زرد بر سر میندازه و اونو سفت میکنه. امیرعلی چفیه رو روی سرش میبنده، صندلی رو جابجا میکنه. نفس دستگوری رو که قبلا آورده بود به امیرعلی میده. امیرعلی یک سینی پر از شم به اون میده. اتاق آماده شده و امیرعلی چفیه بردوش او دی رو در اتاق میچرخونه. به به اینم دفتر پایان نامه جامعه ایدال پایان نامه افتخارآمیز تاریخ تدریس استاد رضوی آی منم مالکیع ازاب یک فرزند شهید بسیجی اوه بخوره استاد رضوی وارد اتاق میشه و نفس از روی پایین می کلا به استقبال استاد می کلا نبرای چی میخوام سقف اینجا رو خراب کنم خراب کردن راحته ساختن یکم سخته یالله سلام علیکم خوش آمدید چند تا کتاب آوردن برام درست شما چشم؟ سلام استاد سلام علیکم خوبه استاد. اینجا رو محیق کردیم بله خیلی خوب شده خیلی خوب شده خب جیرالد با پایان نامتون جاب بزنید استاد ما از دیروز شروع کردیم تازه اینجا مرتب شده حد عقل یه هفته دیگه خوبه منم بهتون سر میزنم فعلا یا علی استاد اینجوری بودن گدار استاد با امیرعلی دست میده و میره نفس لبخند بر لب اونها رو نظاره میکنه امیرعلی که تا دم در استاد رو بدرقه کرده برمیگرده پیش نفس نفس هنوز لبخند بر لب داره امیرالی گره تناب دور کتاب رو باز میکنه آدم جالب یه نه؟ بله بله فقط همین همین و خیلی چیزایی دیگه مثلا؟ از بزرگای جنگ جانباز مجتهد پس خیلی آدم اصابیه مثل مادر شما امیرالی نفس امیغی میکشه و ادامه میکنه وقتی جپه بوده زن و بچه شهید میشه تو با ما دم نمیزه ترکش رو تو تنش مانفر میده لبخند ما کچه هفت شهرش راحتار گشت مانوزن در خواهی کوچه لبخند از روی لبای نفس محو شده به فکر فرو میره پدر نفس چای در دست جلوی پنجره ایستاده نفس دوان دوان میاد پای پنجره بیا بابا نفس جان بود دو نفس به ساعتش نگاه هم کلاسی نوانش نمیدن بایسته آخه ایمونی چقدر بخشه ناسه بابا بعد نوح میود از سال اومده بایش داده این رزمنده های اسلام بوی شهادت میده به قول خودش چراغ لها نما میزنه نور بالا نور بالا خیلی در بفهم اینا به چی فکر میکنن نفس میره و مادرش پای پنجره ها میشه پدر جرعی چای نوشه. ماشین نفس راه نمازنان در کنار جاده میسته امیرالی هم بقید دستشه اونها جای سرسبزی توقف کردند. نفس از ماشین پیاده میشه امیرالی هم کیفش روی دوششه نفس کیفشو روی دوش میدازه و عینک آفتابیشو بر میداره امیرالی در پی نفس راه میداره اینجا کجاست؟ نفس در قرمز رنگ باقی رو آروم باز میکنه و وارد میشه امیرالی میخواد درو در ببنده اما نفس اون رو به آرامش میکنه و وارد باق میشن امیرالی هنجکاف شده که این صداها از کی و از کجاست از بین درختان رد میشن آرام بعد دزدانه کنار صندوق های میره میرسن دولا دولا حرکت میکنن که دیده نشن امیرعلی سعی میکنه از لای صندوقهای چوبی میره صاحب صدا رو ببینه نمیشه جاشو عوض میکنه میبینه نفس هم از لای صندوقها داره نگاه میکنه نفس لبگزان نگاهشو میگیره و میشینه عصبی عینکشو تکون میده امیرالی باور نمیکنه اقب اقب میاد که پاش به یه صندوق گیر میکنه خودشو کنترل میکنه که نیفته نفس عصبی و امیر علی مبعوت دولا دولا و دوزنانه میرن که دیده باشد ها جو خواهر به سرشون قسم میخورن بریم توره به فکر کنم دیگه توضیح نمیخواد نه نفس و امیرعلی سوار بر ماشین قصد رفتن داره امیرعلی اسد ماشین, ماشین حرکت میکنه فقط کن دیگه کاری لطفا چیکار میخای بکنی امیرعلی عصبانی پیاده میشه سنگی رو برمی داره و سراغ ماشین هاجاقا میره نفس جا خورده امیرعلی دستشو بلند میکنه که سنگو بکوبه اما آفید. چی میخوای باش بنویسی؟ من میخوام همینجوری بلش کنم یه چیزی میخوام باش با خود فکر که نمیشه نوشتی وانه. نفس کیفشو برمی داره. امیرعلی عصبی قدم میزنه. نفس رو لب قرمزی به امیرعلی میده. امیرعلی هم سمت ماشین میره و روی صندوق عقبش با عصبانیت مینیویسه به کمرت میزنه. بی تربیت. لب و محکم به شیشه ماشین میکوبه عصبی دستی به سر و گردنش میکشه و توی ماشین میشینه در راه برگشت اونا با هم حرف نمیزنن امیرالی دست زیر چانه در فکره و نفس هم در حین رانندگی فکر میکنه حاج رو در باغ به یاد میارن که با پیژامه و کتی بردوش روی دبعی ریتم گرفته بود و در میان چندین زن و دختر از تختی بالا رفته <تصفيق> این که پیشو شوراخگر بنده خدا نیست. من که دیگه چیزی نگفتم. تو همه اعتقاد داشته بودی. همیشه هم یه اده گور تو لباسی میش. این اصلا آدم نبود که بخواد مؤمن باشه. یه پیشرف قبیه لجن احمق پیشوره. بیا می چیزه. خداوند بزن کنار نخواهد. بزن کنار. ناز. نگذاش. نفس کنار اتوبان نیست. امیرعلی عصبی پیاده میشه و می نفس پیاده شده در کنار ماشین نیسته امیرالی کیفو از دوشش بر میداره به راهش ادامه میده نفس هم سوار ماشین میشه و امیرالی با یقنی لبی در فکر نشسته که محمود به کنارش میاد سلام خبی خوب هستین؟ ستاره شدین؟ تو آفتاب میشه پیداتون کرد ماشالله ماشالله ها کشم می کردیم چیار؟ سرخاب سفیداب یارو امیرالی یقش رو باز میکنه و تازه خودش متوجه میشه. باغبان موسنی با محاسن سفید کمی بلند در پارک مشغول آبیاری درختانه اون کلاهی کشباف بر سر داره امیرالی و نفس پیش اون می امیرالی دست راست بر به باغبان سلام میکنه. سلام سردار سردار سردار من باغبونم باغبون سردار دوستور ما مخلطی <تصفح> باغبان سر شلنگو <تصفح> به طرف اون دو نفر میگیره و کمی خیس میشه اینا به طرف محل سرده سردار و باغبونیم بفرمایید آخه ای. خیلی کار خوبی کردی امیرعلی یه سری به ما زدی سر زده سرزده سرزده مالی یه ای برات مهیا کنم باغ بونی که قدر صابونه مادر تخمه مرغی توی ماهیتابه میندازه. یه تخمه مرغی امیرعلی میشینه و نفس هم روی خونه های خونه میره و بعد کنار کنده‌ای پروی امیرعلی میشینه سردار با سینی صبحانه و دو تا چای پیش اونا میاد و جلوشون میست سردار بزرگ جمعید تحصیل کرده فرنگ؟ اما تا آخر جنگ سربند یا و سه میشه رو پیشو میشه دست شانم نشجا. سردار جبه کجا اینجا کجا؟ امیرالی. نگاهی به امیرعلی میکنه که یعنی قرار نبود از این حرف بزنه هردوش هر شبیه همه اونجا ما زمین شوخ میزدیم برای مین. اینجا شخ می اینجا شوخ میزنیم برای چمن سبزی هر دوش مردم خوشحال میکنه اونجا سر بچه ها بود و <سيح> بل بل و اینجا seno ei bol bol u ye را u ye gol la asje jun را <سيح> <بخلی ما. سيح> به پرچه رو دیگه سر بند نمیبنده. فهمیده؟ چیو فهمیده جنگ جنگ تا پیروزی. بشوار جوان سومی بیشتر نبوده. دکتر. سر یا یا حسینتون چی شد؟ ببخشید سر بند. باهرمون خیلی کنش کنش کنم بزنید اینجا هستم بجا آلان جا امیختره اگر هم کلاسی تاوردی بهش فیلشون میدید مغبون زیپ لباسش رو پایین میاره و سربند یا حسینو که روی قلبش هست به نفس نشون میده. امیرعلی اشک میریزه. امیرعلی دست سردار رو میبوسه و سردار از اونها دور میشه. نفس هم سر به زیر میندازه و کلامی می نمیگه. سردار روی تاب نشسته و امیرعلی روی زمین و نفس به درختی تکیه داده و آواز خواندن سردار رو تماشا میکنه نفس و امیرعلی توی ماشین هستن. با هم حرفی نمیزنن. نفس نگاهی به امیرعلی میکنه و بغض میکنه. امیرعلی در حیات منزل خودشون پای لپتاپ نشسته. شمدی بر سر انداخته. مشغول کارهای پایان نامه است. مدادی میتراشه. دو کبوتر هم در کنارش هستن. نفس هم روی تاب منزل خودشون نشسته و کتابی میخونه. تعداد زیادی شام در کنارش روشن کرد. در کارگاه صحافی همون قسمتی که حالت عبادتگاه داشت امیرعلی و به نفس دو زانو نشستن استاد رزوی هم در کنار اونها کمی اون طرفتر نشسته و طبق معمول چند شم روشنه دوربین روی سپایه کوتاه و فین انجام میشه نفس و امیرعلی چیزی هم یادداشت داشت میکنن. خوب پیش رفتید اما کافی نیست چشم استاد تصمیم میگیرن با آدم های مختلف صحبت کنه قاری قرآن بودم از اولش فکر می کردم که کامپیوتر رایانه رو را میگم قرتی بازیه اما نوم آسید محمد رو میگم 10 سالشه به هم یاد داد دوباره ازدواج کردم دو تا شوهرم به خاطر بچه دار نشدنم بی غیرتی تلاغم دادن مونا یه مادر نشدن و سه تلوان بودنم یه حالا فیلم فیلم میگیریم یه <تص جورایی <party> داریم فیلم میگیریم خب پدر بیان وارزو گفتی رشترهاشونی همومی گلو گلاوی کاری بیکردی زنده باشی زنده حسی بودم واسه خودم شوکتی حیبتی اون منگاهی عدیتی با مارو بود عد وقتی کشو رو پایان نداره <تصفح> تو میگه اگر ما اینا رو پر بکنیم برای اونو درس عبرت میشه <تصفح> گفت اسمت چی بود هفت سال دختر فراری بودم میگرفتنم اینه یه تک نجاست با هم برخورد میکردن هی hey, تقدیر، هی hey, فشار، بیستمری، تنهایی من اگه بخوام زندگیم براتون بگم یه چشتتون عشق میشه، یه چشتون خود اون وقت میشه فیلم شما و نه فیلم من هر کی مجلس شاهدمون شما سپورتل تیمپو دیگه بادی بادا با بارک بادا ایشالا با بارک بادا بادا با بارک بادا ایشالا ببین نگیر نگیر شد برام یه زندگی تازه مادر مادر همین بچه هم نه بچه هم کودک بچه ها دست میزنن و شادی میکنه یدی تیمپو تنبک میزنه و میخونه امیرعلی و نفس هم زمزمه میکنند کاغذی به دوکان یدی تیم پایم. به نامردها ها نمیفروشیم زن به بچه هاش غذا میده دختر فراری قرآن دست دستشه زن گریه میکنه زن ستروند دختری رو بغل میکنه نفس پای تلویزیون نشسته چندین شام در کنارش روشنه و فیلم هایی رو که گرفتن نگاه میکنه در فیلم میبینیم که امیرعلی گونه‌هاش تره نفس نشسته و با مهربانی تمام فیلمو نگاه میکنه نفس در خیابون راه میره و از روی کتاب میخونه قطری آب جلوی پاش میافتی می میسته کف دستش رو رو به بالا میگیره بله بارون میاد و ابر چشمان خودش هم باریدن گرفته راه میافتیم کتاب رو در آغوش دارم یه قطرات باران کُلیم هم عاشق می کنم میرفت نهفته بر سر بام نزار کنان ز سو تا میرفت نهفته بر سر بام نظار کنان ز صبح تا شام تا مجنون را چگونه بیند با او نفسی کجا نشیند او را به کدام دید جوید با او بمده چگونه از بیم رقیب و ترس بدخواه پوشیده به شد زدی آب چون شم به زهر خنده میزیست شیرین خندید و ترخ بگریست گل را به سرشک می خراشید. از چوب حریف می تراشید خانم کجاست؟ یادرگی تو کتاب خوندنی؟ برو بینیم بابا با سرسندخت پایین داره می ره. اونقدر غرق خوندنه که به زنی برخورد کرده با علامت سر و دست و فرستادن بوسه ازخایی می‌کنه و میره همینطور که کتاب می به گل فروشی میرسه نفس گل میخره گل روز قرمز به محل کارگاه امیرعلی اومده با شاخه گلی که در دست داره امیرعلی جلوی آینه ایستاده با پیرهن سفید یق کوتاه و محاسنشو داره مرتب میکنه با چشمان خیس میخونه نفس اومده اون رو از تو آینه میبینیم ولی امیرالی حواسش نیست دوستش دارن دوستش دارم. کیا دوستش داری؟ سلام به قول دکتر سردار باغبون سرزده سرزده بعدم یه سری بزنم سلام علیکم خوهر خیلی خیلی خوش آمدی بفرم این خواهر. به خواتون رسیدی؟ جایی میخواییم بری؟ ام... والا... یکی از دوستای قدیم پدرم و خودم شنیدم روزای آخرش یه ساعتی وقت ملاقاتش خواستم برم منم بیام سردسته یا آبو سواراز فکر نمیخوایم براتون جالب باشه این خدمت شما زحمت کشین خواهر اینم بعدا مطالعه کنید لطفا محبت کرد این میشه به من نگی خواهر سعی میکنم خوهر <سطور> <سطور> خب پس بفرمین که دیر نش راست ببخشید من از این آب چای اگر می کنیم رومنست منو کشته پس بفرمیم امیرالی کیفشو بر می داره و میره. از در حیات بیرون می در کوچه کنار هم به راه می نفس لبخند بر لب داره امیرالی دورو بر برو نگاه می کنیم ماشین کجا بودش؟ پارکینگ خونه چی؟ چی؟ با یابو هن هن هن هن بو تو یابو رو بیارسه سابل با داریه و خدای این شما رو مام جابو سوار شد. نیست. من یابو شدم. خار شدم. چاره دم گوش. چی جد چیه؟ بیاره ای. امیرالی می‌ره که موتورش رو بیاره. راسرال راه دیگه خون به وقتش رسیده. نازو کجاوه گذاشته تنگ یابو بزن بریم. سلام مادر اورانی یابو سالاری. رادیو یابو یی با موتور میاد. نفس در یدک بغل موتور سوار میشه. و اونها با موتور به سمت بیمارستان میشن. مرد موسین روی تخت بیمارستان چفیه دور گردنشه سرم در دست ماسک اکسیژن رو بر می داره که پوکی دیگه به سیگارش بزنه نکن آقای من نکش تاج سر من و میرالی کجایی کجایی خوشمهر با خاک با تماما جی ها آه چو تو پیدا کردی چه از دماغ شدی کلی گیر می‌ده که من باسر نزدی نسردی شلو. امیرعلی و نفس به همدیگه نگاه می‌کنند. امیرعلی توی آب هوزه با شاخه گل و نامی که نفس بهش دید. نفس توی حیات خونشون زیر بارش بارون میچرخه پدر و مادرش از توی پنجره اونو میبینند توی بیمارستان امیرعلی به نفس سلام میکنه و هر دو با هم میخندن امیرعلی گل و نامه به دست در آب حضم میشینه نفس هر دو دست رو به آسمون زیر بارونه نفس به امیرعلی نگاه میکنه لبخند بر لب داره چشماش خیزه امیرعلی هم نگاه میکنه سر به زیر اشک از چشماش سر میشه این هم نوعی خواستگاری بیمار اصلا حالش خوب نیست امیرعلی خیلی ناراحته امیرعلی توی آب حوضه و مادرش کنار حوز. پدر نفس سیگار میکشه و در کنار پنجره با همسرش درباره نفس صحبت باران از دل تنگ منم مالچه کسی نفس را خواهد شد چی شده بکنم کنم تربیت اصولی سیستم ای که ارتقاط داشتی زیر بارون داره شستگاهی شد شرور میگی؟ یعنی مادر امیرالی در کنار میز با حوله سر پسرش رو خشک میکنه شالی بلند هم بردوش امیرالیه مادر پشت میز میشه یعنی عاشق شدیم خوبه دیدی خنده هم بیدلیل نبود؟ من امروز عاشق شدم شما دو ماه پیش میخندیدیم یادتی مثل سگ و پاچه پاچه همو گرفتیم؟ اگر بر من نبودش هیچ میلی؟ خازار که نارویش گست بیلی حالا چیکار کنی؟ کنی آها این دختره قرتی چادر سرش کن نیست این خیلی نقطه دختر در مقابل دختر خونه نفس اون خری هلی خواهر من بابا دم نفس با با روی موم پرده بر سر نشسته آخه چیه این پسر ای مادر هم بالای سر نفسه آخه تور قرآن نگاه کنه کنه ببین عزیزم گولم نفسم پدر پایین پایین نفس رو بیا بیخیان خوش آه خوش بیتونستم بابا نمی تونه. خونه امیرعلی. امیرعلی تلفن رو نمیگیره. مادر تلفن رو دوباره جلوی امیرعلی میگیره. امیرعلی جا خورده. میتونی؟ میتونی؟ نمی تونه. نه، نمی سلام رها جون. خودش میخواد حرف بزنه. نفس دل تو دلش نیست. مادر امیرعلی گوشی بیسیم روی میز جلوی انگار میذاره. ها که ده؟ نفس داره میشنه امیرالی پشت میز شینه و گوشه رو آرون برمیده سلام علیکم نفس چیزی میگه یه لذب بخشید گوشی خواهد امیرالی جرعه چایی نمیشه که خوشه یه گلوش برطرف بشه قلب نفس تاب تاب امیرالی بلهم میشه باهم. عصبی تصمیه امیرالی گوشی رو روی نیز میذاره و ما فردمیم خواستگاری خوهر میخوام نه نه خوهر نه میخوام یعنی یعنی یعنی خوام دیگه میخوام دیگه خوهرم نباشه این خوهر میخوام بله دلو به دریا زده نفس هم باشه دوست دارم برادر آقا رفتم تو در خوردم با سر وای خود چایدم خوهر امیرالی دوست دارم نفس گوشی رو روی سرش میذاره و حوله روی سرشو رو مثل رو سری میگیره نفس روی تختش بالا و پایین میپره پدر و مادرش اومدن گوشی از دست امیرعلی بروشی نفس جلوی پدر و مادرش که حرفاشو شنیدن و حرکاتشو دیدن شرمنده شده میشینه امیرالی یرمش شده شاله روی سرشو برمیدن نفس زیر بارون دم در خونه امیرالی با مادرش صحبت مادر. واقعا با نمیزاری بیا رها نه رها جون یکی حلالو هر حلال. پرده اول بختیان کسته خوبه بابا پایان نفس خوشحال دست کن میده و چندین بار بوسه میفرسه و عقب عقب میره امیرعلی که پشت در بوده و حرفا رو شنیده لبخند میزنه خوشحال میشینه و گوشه چادر مادرشو میگیره نفس با ماشین روشن چراکهای روشن زیر بارون دست گل به دست جلوی در خونه استاد رزوی ایستاده استاد رزوی از توی بالکن با نفس صحبت میکنه چرا ولی این اتفاق فقط توی جهان سوم میفته. شیر بارون داره خیس میشی دختر من دارم میلرزم. جهان سوم دارم. آی ما چقدر خوشبختی که جهان سومی. فقط من شو کره ای پایا از افتخار تپریسه. الله اکبر. مجلس خواستگاری امیرالی کت و شلوار پوشیده با پیرهنه یقه کوتاه سفید. پدر نفس کت و شلوار کرم رنگ پوشیده و کراوات زده. دستگل بزرگی روی مبل کنار امیرعلی. یه خیلی اشنایی میه. بهش میگفتن اخوندی. ها میگن دیپلمات. شما کدومشی؟ بابا شما عزیزم لطفاً ایکس شما بهتره حاج خانومه دریا مادر امیرالی که روسری راه راه رنگی و چادر مشکی سرشه عصبی عینکش رو در میاره بله داشتم مرز می‌کردم که ما به هر حال نفهمیدیم دیپلماتای ما خون شدن یا خونده ما دیپلمات امیرالی فقط گوش میکنه و چیزی نمیگه نفس میکشه و پایین به نگاه میکنه دیپلوماتیک حرف بزنیم مادر بسم الله شما شبه من دارم با شما حرف میزنم نه با مادرتون منم با شما موافقم منمون دقیق مهندیست خواهش میکنم چیا داری؟ امیرالی به نفس نگاهی میکنه منمن من میکنه نگاهی هم به مادرش خب من من نه من ترکی سا نه من نه منم به نظر تو این دختری که الان اینجا نشسته واقعا این شکلیه باور کنی الان به خاطر تو این لکچکو کمونده تو سرش وگر این شخصیتش، پوششش، حسابش، کتابش این تو ناز و نعمت بزرگ شده بابا چیدی بابا مهمون داریم بابا ببینم معافری بلی اون لباسیته که شبیه انجیل جلیه بود لبشی بابا شما من چی هیچ من چی هیچ بابا هیچ چرا عصبی میکنی؟ کنید بر شب سرنوشتت ببینیم عزیز من من نمیدونم چجوری شما رسیده کنم برادر اخوی حاجی ببین تو فرهنگ ما هجاب یه شکل دیگه است که ما به احترام حضور شما به ادب وجود شما رعایت نکردیم ما با هم دست میدیم راحتیم ولی بغیرت نیستیم اشتباه نشه حالا تا چی؟ تو کی؟ بله من اصلا نمیفهمم بله معلومه که نمیفهم من باید یه دیگه با شما صحبت کنم شما اومدی خواستگاری دختر من به چه پشتی؟ اهل بیت چی؟ اهل بیت اهل بیت؟ مگه پس خانم منظورشون امام حسین و مادر نفس میخواد فضا رو آروم کنه. پدر نفس از روی مبل بلند میشه. عصبیه. دستاشو به هم میماله. پس جواب من این بود. امام حسین. ببین خودش بیا. نه نه. امام حسین کجا بیا؟ چی میگی بابا؟ بید خوشگاری کنه بعد میگید به نظر من درست میگی. میاد امیر علی میشه من من بگه بازم خواستگاری کنم ما که دم از دین و ایمان اماموزهی میزن این اینجوری هستین بای دیگران اهل بیتتون گفتن روز مردم رو شب کنین برو آقا برو پدر نفس از روی مب بلند میشه عصبیه دستاشو به هم میمانی نفس در راه روی با چادر مشکی راه میره به دری میرسه وارد کلاس مادر امیرعلی میشه میشینه مادر امیرعلی متوجه شوه نفس گریان با دستمالی عشقشو پاک میکنه مادر امیرعلی در حین درس داده متوجه حالت اون هست ولی به کارش ادامه میده حیران شده هر کسی در آن پی میدید و همی گریست بر او فارق از آن که مردمی هست یا بر کسی نهده است. حرف از برق جهان سترده می بود نه زنده و نه مرده بر سنگ فتاده خار چون گل سنگ دگرش فتاده بردل صافی تن او چو گشته در زیر دو سنگ خرد گشته روی تخته کلاس نوشته شده لیلی و مجنون نفس از کلاس بیرون میاد توی راهرو به دیوار تکیه میده میشینه و گریه میکنه در, در... امیرعلی پیش سردار محسن اومده های توی کیسه رو برای بابون پیر آورده هر دو میشینن به صحبت سردار برگهای اضافی رو میچنید به بالله یه لحظه میخواستم تو روش بایستم دیدم حق نیست لخترشه اختیاردارشه چه بکنم؟ جای دستاش تو صورتت مونده امیرالی دستی به طرف چپ صورتش مکشه مثل که خیلی دردش اومده سردار با آبفشان روی برک آب. درد عشقی کشیدم که مپو راه روی دانشگاه کلاس تمام شده مادر امیرالی چادر بر سر پیش نفس میاد که توی راهرو ایستاده بغلش میکنم نفس و مادر امیرالی کنار حوزی نشستن نفس دستی در آب میزنه سمت سمت چپ صورتش قرمزه مادر امیرالی با دستمال دستی بر صورت نفس میکشه جایی چیه رو صورتت چیزی نیست خورده به دستای بابا تو دیروز من دختر. من وقتی دلم پیش امیر حسین جا گذاشتم عین تو بودم وقتی که رفت من با دو چشم دیدم که جانم میروند تنهای تنها موندم من موندم و تنها یادگارش امیرالی خیلی سخت آدم 27 سال پدر و مادر و خانوادش رو نبینه نه؟ کارگرهای پدر نفس در گاراژ رو باز میکنن که جناب رئیس با ماشین بیرون بره امیرالی بیرون استاده و سر راه اونو با سبد گلی میگیره. سلام علیکم. علیکه سلام. آزم تو اومدی؟ جای کشیده ها رو صورت هم کمرنگ شده بزنم. این طرف هم هم نزدیم. برخورد برخورده دیروز معذرت هم. واقعا. ولی حرف هم سر جاشه. ولی من بازم میام قید دختر من رو بزم کنی کنید تو رو به تمام اهل بیت قسمت میده تو رو خدا قسم ندید آقای خودست تو رو خدا قسم ندید تو رو به همون حسین عفظ من رو نگیر امیر تحت تاثیر این حرف قرار گرفته زر به زیر میدازه نفسش بند اومده لحظه‌ای به یاد مراسم ازاداری امام موسی علیه میفته که در کنار محمود و استاد رضوی سینه میزدن و اشک میریختن امیرعلی سبد گل روی کاپوت ماشین پدر نفس می‌ذاره نگاهی به اون میکنه و عقب میره پدر نفس هم سوار ماشینش میشه و با سبد گل روی ماشین راه می‌افته و میره امیرعلی به خونه خودش میاد نفس چادر برسر رو به روی مادر امیرعلی نشسته و منتظر اومدن اون هستن. جاي؟ هلأ بميرا، سردار گفت بوم با بت سیلی زده. من شهرمندم امیرعلی. امیرعلی مرد. مرد. بفرمایید بیرون. مادر امیرعلی هم نگران بلند می‌شید. برو بیرون. دیگه نمی‌خوام ببینمت. سخرالله. برو بیرون! امیرعلی! مادر شما شما لطفا یه لحظه اجازه بدین چیزی نگین. ساکت لطفا دیگه هیچ وقتا میخوام ببینم اتون بپرمه این میرون. میرون به نظر من شما بیرون راجون من راجون من میرم گفتم خودت بیرون راجون اكو ندارم شما اینطوری با رفتار کنید من توهقو ندارم پسرم به کسی که به خونش ال جواب ورده بی حرمتی کنه بهش فشار اومده که اومده مصاد رضوی در تکیه نشسته محمود هم اونجاست امیرعلی در جلوی تصویر مغموم تسبیحشو برگردنش میندازه از فردا بساط تکیه رو از انبار بیاری بیارید بیرون تکیه رو راه بندازید انشاءالله <تصفيق> طنبان الله امیرالی که فتکیه په میکنه مادر روسری آبی برسرشه و به آرامی قرآن میخونه و بر سینه اونو میفشاره نفس دمه در کارگاه صحافی تنها نشسته و لیلی و مجنون میخونه امیرالی در کنار داربست ایستاده و پیچ‌ها ها رو صفت میکنه چفیه برسرشه و تمام حرسش رو روی پیچ خالی میکنه نفس پیش سردار باغبون اومده و باهاش صحبت میکنه و سراغ امیر رو میگیره نفس در کتاب سرگردون بین قفسهای کتاب میچرخه حالا با استاد رزوی صحبت میکنه و از اون هم سراغ امیر علی رو میگیره استاد رزوی از صحبت های نفس ناراحت شده نفس که همچنان چدار مشکی سرشه پیش دوستان امیر علی میاد و مخیره چقدر متون؟ بخیره بخیره سلام سلام سهلا باشه این وقت شلیزا بخیره تو افتان بار امیرانی اون نمیتونه ایشونه کجا هست نفس نشسته و شعر میخونه چشماش خیزه از عشق کتابی پیش روشه که درباره باره دیدگاه های اساسی جامعه شناسیه جمله خود نمایی میکنه حسین آرمان است و کربلا آرمان شهر نفس با دست بر این جمله میکشه و جوهر اون در هم میشه امیرعلی شم و تسبیح در دست توی تکیه نشسته استاد رضوی پیش امیر میاد رسته نباشه اجرت به حسین سلام چیکار کار میکنی بخوره در فکر میکنی درسته انتماس دو آجام باید جست شم را از دست امیر علی و امیر علی میره و استاد شم در ده و امیر علی میره و استاد شم در دست تنها میمونه. سردار باغمون به تکیه اومده و بالای سر امیر علی که دراز کشیده و خوابیده می پارچه یا حسینی روی اون میدازه نفس روی تا به خوابش برده. پدرش پتوی روش میندازه. مادرش هم اونجا ایستاده روز شده امیرعلی در تکیه بر سر تشتی کفالود نشسته و ظرف میشوره سرش رو پایین انداخته و توی فکر و زمزمهی میکنه نفس با چادر کنارش میاد اما امیرعلی متوجه نمیشه برو نفس راحت بدم که به راحتی برم تو رو به هر کسی و هر چیزی که اعتقاد داری نفس برو چرا؟ کمترین حقم بدونم چرا؟ بهت التباس بکن جان ما بسته امیرالی بلند میشه پاش به تشت قرمز میگیره و ظرفا آب کف روی زمین میریزه. امیرالی رفته و نفس با دستان کفالود سرش رو در دست میگیره تکیه راه افتاده و عزاداران مشغول ازاداری هستند استاد رزوی میانداری میکنه پدر نفس در خونه روی موب نشسته و کتاب میخونه یک اینک بر چشم و عینکی بر سر داره متوجه صدای ازاداری خارج از منزل شده کنج کاف میشه کتاب میبنده و بلند میشه دکمه ای آیفون تصویری رو میزنه و داخل کوچه و ازاداران رو نگاه میکنه اون هم کمی تحت تأثیر قرار گرفته جمع ازاداران تکیر نفس و مادر امیرانی هم هست همسر و مادر مرد جانباز هم حضور دارند. مرد قرآن خون زنجیر میزنه دوستان امیر علی هم استاد رزوی هم هست امیر علی تبل ریز میزنه مرد جانباز هم روی ویلچر نشسته و سینه میزنه نفس سینه زدن امیر علی و دیگران رو نگاه میکنه خودش هم سینه میزنه و عشق میریزه صدای حسین حسین جمعیت صورت نفس رو در کرده عشق میریزه و زلد حسین حسین میده نفس پایه به رحمه قمیر قدی رو میبینه که در کنار استاد رزوی سینه میزنه کفشاش رو درمیه در کنار ویلچر مرد جان باز کرده. آروم آروم با پای برهنه وارد جمعیت میشه پیرمرد جانباز شیمیایی که در بیمارستانه حسین حسین میگی در کنارش تعداد زیادی شم روشنه و آخرین نفسشو میکشه و به دیدار معبود میگی کبوتری بر پیکر بیجانش جانش میشنه. سردار باغمون در میان شم های روشن ور تخت خودش نشسته قرآن بر سر گرفته و میخونه عزاداری به پایان رسیده امیرعلی مغموم در کنار شم های سوزان نشسته زنی با چادر مشکی کنارش میاد مادرش. امیرعلی گوشه چادر رو میگیره و بر پیشونیش میزنه بعد نگه سوختم و شم های بسیار زیادی در اطراف در حال سوختنن شبی دیگه زنان شم در دست عزاداری می کنن امیرالی مادر استاد رزوی همسر و مادر مرد جانباز شم در دست دارند و به همراه جمعیت می خونن. پرچم قرمزی هم پشت سرشون در احتزازه زنان دیگری هم اونجا می شستن روی زمین و در سینی ها شامهای زیادی روشنند و میسوزن. نفس به همراه پدرش به جمعیت می‌پیوندند و پیش امیرعلی علی میرن. پدر نفس که کت شلوار مشکی پوشیده دست امیرعلی رو در دست. میکره. اونو دعوت به نشستن نشستسته نشیده میشسلام! چرا دست زنو تو همه بلند میشن و اکسو عمل نشون یاد تو یا زهران ما و نوای بی نواییم. بسم الله اگر حریف مایی شنوندگان گرامی امیدوارم از شنیدن فیلم دلشکسته لذت کافری بودن مثل همیشه شما رو دعوت میکنیم که با ارائه نظرات و پیشنهاداتتون ما رو یاری بفرماییم همچون برنامه های پیشین فرشاد آزرنی تهیه کنندگی این کار رو به عهده داشت و جناب آقای علی حاجی نوروزی هم صدا بردار این برنامه بودن بنده هم بهرام سر بری نجات هستن. همه ما آرزومندیم که این تلاش گروهی مورد توجه شما قرار بگیره تا برنامه دیگه خدا بگهده I'm